اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدلهم سيئات ما مَا عَمِلُوا حق بهم كانوا به و بادیهایی آنچه کرده اند برای آنان آشکار شد و آنچه که مسخره اش می کردند آنها را فرو گرفت. و قیل اليوم نسيكم كما نسيتم لقا يومكم هذا و مأواكم النار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 پس امروز نه آنها از آن دوزخ بیرون آورده میشوند و نه هیچ عذری از آنها پذیرفته می شود فلی الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین پس ستایش مخصوص خداست پروردگار آسمانها و پروردگار زمین پروردگار جهانیان وله الكبریاء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم و كبريا و بزرگی در آسمان و زمین از آن اوست و او پیروزمند حکیم است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان حامیم. ها میم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا مما انذروا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 ایتونی بكتاب من قبل هذا او اثارت من علم این کنتم صادقین ای پیامبر به آنها بگو آیا دیده اید آنچرا که جز خدا میخوانید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدهاند.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 و من اضل من من یدعو من دون الله من لا يستجیب له الى يوم القیامة و عن دعائهم غافلون و چه کسی گمراه تر است از آن که معبودی غیر از الله را میخاند؟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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَهِنگامی که آیات روشن ما برانها خانده شود، کسانی که کافر شدند در برابر حقی که برای آنها آمده است گویند این جادویی آشکار است ام یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فيه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 قل ما كنت بدعن من وَمَا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما ما أنا إلا نذير مبين بگو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 و هذا كتاب مصدق لسانن عربليذرا الذيمون ظلموا وبشرا المسنی و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود و این قرآن کتابی تصدیق کننده آن آنکه به زبان عربی است تا کسانی که ستم کردند بین دهد،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 و نه آنها اندوه شوند. اولائی که اصحاب الجنت خالدین فیها جزاءا بما ما کانو یعملون آنها اهل بهشتند، جاودانه در آن باشند این پاداش است که انجام میدادند.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 ایننی به ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را به دشواری حمل می کند و به دشواری بر زمین گذارد و دوران حمل او و از شیر باز گرفتن او سی ماه هست. تا هنگامی که به کمال توانمندی و رشدش برسد و به سن چهل سالگی برسد گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی، به جای آورم و کار شایست ای انجام دهم که تو از آن خوشنود شوی و فرزندانم را صالح گردان بیگمان من به سوی تو بازگشتم و تو بنمودم و بیشک من از مسلمانانم. أولئک الذين نتقبل عنهم احسن ما عمل و نتجاوز عن سيئتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون آنها کسانی هستند که ما کوترین کارشان را میپذیریم و از گناهانشان میگذریم و در زمری اهل بهشت هستند این وعده است که وعده داده میشدند والذی قال لِوَالِدَيْهِ اُفْفِلْ لَكُمَا أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي أتعذاني أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان لله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حَق و کسی که به پدر و مادرش گفت افت بر شما آیا شما به من بعده می دهید که از گورم بیرون آورده می شوم در حالی که نسلها پیش از من گذشته اند و هرگز برانگیخته نشدند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 اولائك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين انها کسانی که همان سخن در زمری امتهایی که پیش از آنها از جن و انس بر برانها محقق شده است بیگمان آنها زیانکار بودند و درجات درجاتم مما عملو ولی وفیهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهوم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون و روزی که کسانی که کافر شدند براتش ارزه کنند و به آنها گفته شود در زندگی دنیا نعمتهای پاکیز و لذتهای خود را از بین بردید و از آنها بهرمند شدید. پس ای کافران امروز به عذاب خار کننده پاداشتان می‌دهند. و این به خاطر گردنکشی و استکباری که به ناحق در زمین می کردید و به خاطر نافرمانی و گناهانی که انجام می‌دادید. وَذَكُرَ أَخَاعَدٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتٍ نُذْرٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا الله إِن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 بیگمان من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. ترسم قالوا اجئتنا لتأفیکنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا این کنت من الصادقین آنها گفتند آیا آمده ای تا ما را از پرستش معبودهایمان هایمان برگردانی؟ بس اگر از اگر اذراست گویانی آنچه به ما وعده اددادی برای من بیاور. قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون. هود گفت علم تحقق آن تنها نزد خداست و من آنچرا که به آن فرستاده شده ام به شما میرسانم ولی کن من شما را قومی میبینم که پیوسته نادانی میکنید فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به فيها عذاب علیم. پس هنگامی که آن عذاب را به صورت ابری که رو به راه وادی‌هایشان است دیدند خوشحال شدند گفتند این ابری که بر ما باران میبارد، هود گفت نه بلکه این همان عذاب است که در آمدنش شتاب می کردید، بادی است که عذاب دردناکی در آن است کل كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرا إلا مساكنهم كذلك نجزی القوم المجرمین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 ولا قد مَا حَوْلَكُمْ مِنَ من وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ نَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ و به راستی ما غریه و آبادی را اطراف شما بوده اند حلاک کردیم و آیات خود را به صورتهای گوناگون برای آنها بیان کردیم تا شاید بازگردند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 سَمِعْنَا سمعنا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ بعد إِنَّا سَمِعْنَا لما بين مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الحق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 اجيبوا داعي الله وآمنوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم من عذاب أليم. اي قوم ما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 أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أي يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير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 سوگند به پروردگارمان که حق است گوید پس به خاطر کفری که میورزیدید عذاب را بچشید فاسبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون پس اي پیامبر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 و همه از سوی پروردگارشان حق است نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را از آنها دور ساخت و بخشید و کارشان را اصلاح نمود ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین امنوا اتبعوا الحق من ربهم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 ودخلهم الجنة عرفها لهم و آنها را به بهشتی برای آنها بیان داشته است وارد کند یا أيها الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ای کسانی که ایمان آورده اگر دین خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند و گام را ثابت و استوار میدارد والین ك فوف صل اعمالهم و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان باد و خداوند اعمالشان را نابود کرد.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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذین من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها آیا در زمین سیر نکردن تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود خداوند اموال و دیارشان را بر سرشان بیران کرد و آنها را نابود ساخت و برای کافران کیفری مانند آن خواهد بود ذلك ان الله آمنوا و ان لا لهم. این بدان سبب است که خداوند یاور و مولای کسانی است که ایمان آوردند و آنکه کافران مولا و یاوری ندارند این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 بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغ‌هایی از بهشت وارد میکند که نرها از زیر درختان آنجاری است و کسانی که کافر شدند از متاع دنیوی بهره میگیرند و میخورند همچنان که چهارپایان میخورند و آتش جهنم جایگاه آنان است و پریم من اخرجتك اهلكناهم بسیار شهرهایی که مردم آنها از مردم شهرتو که بیرونت کرده اند توان بودند. ما کشان کردیم پس هیچ یاوری نداشتند. افمن كان على بینة من ربه كمن زین له سوء عمله واتبعوا هواءهم آیا كسیكه از سوی پروردگارش بر شیوهٔ روشنی باشد همانند کسی است كه كردار بد او در نظرش آراسته شده و از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وصف بهشتی که به رهيزاران وعده شده چونی است که در آن نهرهایی از آب زلال بدبون نشده و نهرهای از شیر که تعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب ناب که مای لذت نوشندگان است و نهرهایی از اصل مصفا وجود دارد و نیز در آن برای آنها از هر گون ها محیاست و از همه برتر آمرزشی از سوی پروردگارشان است.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 اولئیکالذین طبع الله علی قلوبهم و اتبعون ای پیامبر گروهی از آنها به تو گوش فرا می دهند. تا وقتی که از نزدت بیرون رفتند به کسانی که به آنان علم عطا کرده شده از روی استهزامی گویند الان محمد چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هواهای نفسانی خود پیروی کرده اند وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْزَادَهُمْ هُدَوْ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان افزود و به آنان پرخیزگاری عطا فرمود فقد پس آیا آنها جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان سد؟ پروستی نشانه‌هایش آمده است پس چون فرار پند گرفتن و ایمانشان چه سودی خواهد داشت فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 پس برای آنان شایسته تر است طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فرمانبرداری نمودن و سخن نیکو گفتن پس چون تصمیم قطعی جهاد گرفته شد اگر با خدا صادق باشند برای آنها بهتر است فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم پس آیا اگر به حکومت رسیدید جز این امید است که در زمین فساد کنید و پیوند خیشاوندانتان را ببرید اولئیک الذین لعنهم الله فأصمهم و بصارهم اینان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است پس گوشهای آنان را کنیموده و چشمهایشان را نابینا کرده است افلا یتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دل هایشان قفل هاست ارتدوا على ادبارهم من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 ذلک بان انهم قالوا للذین کرهُوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم این بدان سبب است که آنها به کسانی که نسبت به آنچه خدا نازل کرده از وحی کراحت داشتند گفتند ما در پاره از امور از شما پیروی می کنیم و خداوند پنهان کاری آنها را میداند فکیف اذا توفتهم الملائکه يضربون وجوههم و ادبارهم؟ پس حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ جانهایشان را میگیرند بر چهرهها و پشتهایشان میزنند ذلک ما اسخط الله رضوانه فاحبط اعمالهم این کیفر بدان سبب است که آنها از آنچه خدا را به می میآورد پیروی کردند و خشنودیاش را کراهت داشتند پس خداوند اعمالشان را نابود کرد ام الذین في قلوبهم يخرج الله آیا کسانی که در دلهایشان بیماری نفاق است گمان کردند که خداوند کنههایشان را آشکار نخواهد کرد؟ ولو نشاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسيماهم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ و ما بخواهیم آنها را به ای بر نشان میدهیم آنگاه آنان را با سیما و قیافه هایشان بشناسی و مسلما تو آنان را در طرز سخن گفتنشان می و خداوند اعمال شما را میدانند وا نبلون نک حتى نعلم المجهدین منكم والصابرین و نبلو اخباركم. و اخبهواک و همه شما را قطعا آزمایش میکنیم، تا مجاهدان از شما و صابران را معلوم کنیم و اخبار و احوال شما را بیازماییم این الَّذِينَ كفروا وصدوا عن سَبِيلِ الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن اللَّهَ الله شيئا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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بی گمان کسانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر مردند پس خداوند هرگز آنها را نخواهد آمرزید فلا تهنو و تدعو الى السلم و الاعلون والله معكم ولن یترکم پس ای مؤمنان هرگز هنگام جهاد سست نشوید و دشمنان را به صلح و آشتی دعوت نکنید در حالی که شما برتر هستید و خدا با شماست و چیزی از پاداش اعمالتان را نخواهد کاست اینما حیات الدنیا لعب و له و ان تؤمنوا وتتقوا یاتکم اجورکم ولا يسألكم اموالکم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 انگاه اصرار نماید بخل می و کینه‌های های شما را آشکار می‌سازد. ها انتم ها تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنكم من یبخل؟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 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا براستی ما برای تو فتح و پیروزی آشکاری مقرر کردی این لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ نعمته عليك عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیما.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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ فِي قُلُوبِ ايمانا ولله جنود السماوات والأرض الله عليما او كسيست كه در دلهاي مؤمنان آرامش نازل كرد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 علیهم دائرة السوء وغضب الله علیهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصیراونیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد میبرند عذاب کند.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 و سپاهیان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خداوند پیروزمند حکیم است. این ارسلناک شاهدا و, و ای پیامبر به ما تو را گواه و مجد دهنده و بیم دهنده فرستادیم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 و یا در حق شما نفعی بخواهد بلکه خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است بل ظننتم ان لينقل الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِیمًا فرمان روائی آسمان ها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد میآمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند. و خداوند مهربان است سيقول المخلفون اذا طلقتم الى مغانم لتأخذوها نتبعكم يريدون این یبدلو كلام الله قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قوم بل تحسدوننا بل كانوا لا إلا هنگامی که به سوی غنایم خیبر حرکت نمودید تا آنها را برگیرید بازماندگان حدیبیه خواهند گفت بگذارید ما نیز در پی شما بیاییم آنها میخواهند کلام خدا را تغییر دهند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 وَإِنْ تَتَوَلَّوْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِیمًا ای پیامبر به بازماندگان از عراب بادی نشین بگو به زودی فراخانده میشوید به سوی قومی سخت جنگجو و نیرومند که با آنها نبرد کنید یا اسلام بیاورند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 و من الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و من یتول یعذبه عذاباً بر نیست و بر لنگ نیز گناهی نیست و بر بیمار هم گناهی نیست اگر اینها در جهاد شرکت نکنند و هر کس از خدا و رسولش اطاعت نماید او را در باقهای از بهشت وارد می سازد که نهرها از زیر درختان آنجاری است و هر کس که سرپیچی کند به عذابی دردناک او را عذاب میکند. لَ رَضِيَ اللهَّهُ فَأَنزَلَ, عليهم فأنزل عليهم فتحا قريبا. از مؤمنان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 و همچنین غنیمت های فراوانی که آن را به دست میآوردند و خداوند پیروزمند حکیم است وعدکم الله مغانم کثیرت تأخذونها فعجل لكم هذه.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 و دست تعدی مردم مخالف و دشمن را از شما باز داشت و تا عبرت به نشانی برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند و لم تقدرو علیها قد احاط الله بها وكان الله علی كل شيء قدیرا و های دیگری که هنوز به آنها دست نیافته اید به تحقیق خداوند به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست و لو قاتنکم الذین كفروا ولو الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا و اگر کسانی که کافر شدند با شما می جنگیدند یقینا پشت می کردند و از میدان فرار می کردند آنگاه یار و یاوری نمی یافتند سنت الله اللتی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا این سنت خداوند است که پیش از این نیز گذاشته است و برای سنت خدا هرگز دیگرگونی نخواهی یافت. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم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 إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا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 و آنها از هر کس سزاوارتر به اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام إن شاء الله آمين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا خداوند رؤیای رسولش را به حق تحقق بخشید قطعا اگر خدا بخواهد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 سيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة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 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و در میان خود مهربانند آنها را در حال رکوع و سجده میبینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌طلبند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 چه مبادا در حالی که نمیدانید اعمال شما نابود گردد این الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله طلبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم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 ان الَّذِينَ مِن وراءِ الْحُجراتِ أكثرهم لا <يَعقلون> بیگمان کسانی که از پشت حجرهها صدایت میزنند بیشترشان بی خیردانند. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خیرا لهم والله غفور الرحيم و اگر آنها صبر میکردند تا که خود به سوی آنان بیرونایی برای آنها بهتر بود و خداوند آمرزنده مهربان است يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبینو أن تصیبو قوما بجهالت فتصبحو علا ما فعلتم نادمین ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید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 فضلا من الله و نعمه والله علیم حکیم و این خیر فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانای حکیم است و این طائفتان من المؤمنین قتتلوا فاصلحو بینهما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 این الله یحب و اگر دو گروه از مؤمنان با یک دیگر به جنگ برخواستند میانشان آشتی برقرار کنید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان خيرا منهم ولا نساء من نساء ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 پس آنانند که کارند. یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن الظنئث ولا تجسسوا ولا ایمان بعضكم بعضا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمو. واتقوا الله إن الله تواب رحيم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 بیگمان خداوند توب پذیر مهربان است یا <سی> ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم و شعوبا وقبائل لتعارفوا ان عند الله الله ای مردم بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامی میترین شما نزد خدا پرهیزگارترین ترین شماست بیگمان خداوند دانای آگاه است قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخلی الایمان فی قلوبكم وإن تطیع الله ورسوله لا ینتکم من اعمالکم شیئا إن الله غفور رحیم اقراب بادی نشین گفتند ایمان آورد این ای پیام بر بگو شما ایمان نیاوردید لیکن بگو اید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است و اگر خدا و پیام برش را اطاعت کنید چیزی از پاداش اعمالتان کاست نمی شود همانا خداوند آمرزنده مهربان است اینم المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتبو ثم لم يكتبوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون مؤمنان حقیقی تنها کسانی اند که به خدا و پیام برش ایمان آورده اند سپس در این باره شک و تردید نکردند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 آیا خدا را به دین خود با خبر میسازید؟ در حالی که خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است می داند و خداوند به همه چیز آگاه است. یمنون علیک ان قل لا عّ <عليّ> اسلامكم بلهمون عليهكم ان دكم لمان انک توم صادط <صادقين> آنها بر تو ای پیام بر مننت میگذارند که اسلام آوردهاند بگو اسلام آوردنتان را بر من مننت نگذارید. بلکه اگر راست گویید خداوند بر شما مننت می‌نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است این الله یعلم غیب السماوات والله بصير بما تعملون همانا خداوند غیب آسمان و زمین را میداند و خداوند به آنچه انجام میدهی بیناست بسم الله الرحمن الرحیم قا وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قَاف قاف سوگند به قرآن مجید تو پیام بر خدایی بل عجبو انجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بلکه آنها تعجب کردند که هشدار دهنده ای از میان خودشان به سوی آنان آمده پس کافران گفتند این چیزی عجیب است اذا متنا ترابا رجع بعید. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد این بازگشتی بعید است قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب کتاب به راستی ما میدانیم آنچرا زمین از آنها میکاهد و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده نزد ماست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 الى السماء فوقهم كيف بنیناها و زیناها و ما آیا آنها به آسمان بالای سرشان نمی نگرند که چگون آن را بنا کرده ایم و آراسته ایم و هیچ شکافی در آن نیست؟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 تبصیرت و ذکر لکل عبد منیب تا همه اینها بینش و پندی برای هر بنده توبکاری باشد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 و نخل باسقات لها طلع نضید و نخلهای بلند قامت که خوشهایی برهم چیده دارند رزقا للعباد و به بهی بلدتا میتا الخروج همه اینها برای روزی بندگان رویانیدیم و با آن باران سرزمین مرده را زنده کردیم بر آمدن از گور و زنده شدن نیست چنین است پیش از آنها قوم نوح و اصحاب الرس و پیش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و قوم سمود پیام برانشان را تکذیب کردند وعاد وفرعون وإخوان لوط بهمچنین قوم عاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ب أصحاب وقوم تبع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 از آفرینش جدید در تردید و شک کند ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إليه من حبل الوريد به راستی ما انسان را آفریده ایم و چیزی را که نفسش به او وسوسه می کند می و ما از شاه رگ گردن به او نزدیکتریم. اذ از المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید هنگامی که دو فرشته فراگیرنده بر جانب راست و چپ نشستهاند،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 ذَلِكَ ما كُنْتَ منه تحید. و سکرات و سختی مرگ به راستی فرا رسید و به او گفته می شود ای انسان این همان چیزی است که تو از آن می گریختی و نفخ خافی الصور ذَلِكَ يَوْمُ الوعید و در صور دمیده شود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 وقال قرینه هذا ما لدی عتید و فرشتهٔ همنشین او میگوید این اعمال اوست آنچه که نزد من آماده و حاضر است القیا فی جهنم كل كفر عميد. خداوند به فرشتگان مراقب فرمان میدهد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 و مسلما من پیش از این برای شما هشدار فرستاده بودم ما یبدل القول وما انا بظلام آن سخن نزد من تغییر داده نمی‌شود و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد یوم نقول <تصفيق> و به یاد آور روزی که به جهنم می آیا پر شده ای؟ و او میگوید آیا هیچ عبزون بر این هم هست؟ و ازلیفت الجنت للمتقین غیر بعید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 من خشی الرحمن بالغیب و بقلب کسی که در نهان از خداوند رحمان بترسد و با قلبی تو در محضر او آمده باشد ادخلوها بسلام به آنها گفته میشود به سلامت وارد آن بهشت شوید که این روز جاودانگی است لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید هرچه چه در آنجا برای آنها هست و در نزد ما افزون برین است وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص و چه بسیار امتهایی را که پیش از آنها هلاک كردیم كه آنها از اینها قویتر بودند پس در شهرها سیر و جستجو کردند، آیا هیچ راه فراری وجود دارد؟ این فی ذلک لذکرال لمن کان له قلب او القسم و وهو شهید بی گمان در این سخن برای صاحب دلان یا آنان که با حضور خاطر گوش فرادهند پندیست وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبَ وبراسی ما آسمان‌ها وزمین وآنچه درمیان آن در دوست در شش روز آفریدیم و هیچ کوچه خستگی و رنجی به ما نرسید. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب پس بر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی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 روزی که منادی از مکانی نزدیک ندا میدهد بالحق، یومایسمعونالصیحهبالحقذلکیومالخروج روزی که همگان سیخ را به حق میشنوند آن روز خروج از گورهاست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 کتب بالقرآن من یخاف وعید ما به آنچه مشرکان میگویند داناترین و تو ای پیامبر بر آن ها نیستی آنها را به ایمان آوردن اجبار کنی پس کسی را که از عذاب و هشدار من میترسد به وسیله قرآن پند و اندرز بده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان و الذاریات سوگند به بادهایی که خاک را میپراکند و سوگند به هایی که بار سنگینی از باران را با خود حمل میکنند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 وان الدین لواقع و یقینا روز جزای اعمال واقع شدنی است الحبک قسم به آسمان كه دارای راهها و ستارگان زیباست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 مرگ و لعنت بر دروغ گویان الذي کسانی که آنان در غفلت و جهل فرو رفته اند یهون ای پیوسته می پرسند. روز جزا کی خواهد بود. هم علی النار یفتنون همان روزی که آنها بر آتش عذاب می شوند ذوقو هذا هذا الذي كنتم بهی تستعجلون و به آنها گفته می شود عذاب خود را بچشید این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید این المتقین جنات و عیون در روز قیامت مسلمن پرهیزگاران در باغها و چشم سارهای بهشت هستند آخذین ما آتاهم ربهم این ذلك محسنین. و آنچه پروردگارشان به آنها عطا فرموده دریافت کرده اند بی گمان آنها پیش از این در دنیا گوکار بودند کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون آنها بخش اندکی از شب را میخوابیدند و به نماز و نیایش مشغول بودند و بالاسحارهم یستغفرون و در آمرزش طلب می کردند و فی اموالهم حق للسائل والمحروم و در انبالشان برای سائل و تنگ دست محروم بهره و حقی بود و, الارض و در زمین عبرت و نشانه هایی برای اهل یقین است و, افلات و نیز در وجود خودتان آیا نمی بینید؟ و و رزق و رزق شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است.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 و گوگ ساله بریان شدی فربهی برای آنها آورد. فقربه او قال: «الا تأكلون». سپس آن را به آنان نزدیک کرد و گفت: آیا نمی خرید؟ فاوجس منهم خیفه، قالوا «لا تخف». و بشروه بغلام پس چون دید دست به سوی غذا دراز نمی کنند، از آنها احساس ترس و وحشت کرد آنها گفتند نترس ما فرستگان پروردگار توییم و او را به تولد پسری دانا بشارت دادند فأقبلت امرأته في صرّة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم أنغا همسرش سار فریاد زنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت من پیرزنی نازا هستم چگونه فرزند میزايم قال وكذلك قال ربك فرشتگان گفتند پروردگار تو این چونین فرموده است و بیگمان او حکیم داناست